س. نظریه ممها ممها چیستند؟ ممها متناظر با جنها مفهومسازی سازی شدند. افرادی مانند دافکینز و دیگران در مفهوم پردازی ممها پیش بودند. کتاب ژن خودخواه دافکینز نخستین بار در سال 1976 منتشر شد. بر مبنای این نظریه ممها کتای رفتاری هستند که فرهنگ ما را توضیح میدهند. این نظریه البته به لحاظ متد شواهد و مفروزات قابل بحث و نقد و بررسی است ولی به نوبه خود با مدلسازی و مفهومسازی وضع مورد نظر ما را توضیح می دهد و یک الگوی توصیفی، تبیینی و یا توضیحی فراهم می‌آورد. در اینجا فقط به برخی ظرفیتهای محدود این ادعای نظری توجه داریم و آن را به مصابه یک نظریه چندان منقه تلقی نمی کنیم. درباره این نظریه و ظرفیت و محدودیت های آن بحث شده است. مطابق این ادعای نظری ممها ریزواهد فرهنگ هستند. متناظر با جنها که ریزواهد ارگانیسم زنده هند. بدن ما از سی میلیارد سلول مبتنی بر اطلاعات ژنتیکی تشکیل شده که رفتار و حالات ما را شکل میدهد. نظام ژنتیکی نیز نتیجه فرایند دو تا سه میلیارد سال تطور است. با اکتشافی که واتسون و کریک در سال 1953 انجام دادند، ساختار DNA شناخته شد و معلوم شد در ساختار شیمیایی آن کتهای ژنتیکی قرار دارند که رمزهای وراثتی افراد آنجاست. به طور کلی، بر اساس نظریات ژنتیک، نسبت وسیقی میان دو هیته ژنوتایپ و فنوتیپ وجود دارد. ژنوتایپ، خصایص برآمده از اطلاعات ژنتیک است و فنوتیپ خصایص برآمده از اطلاعات محیط و تجربه. این دو با هم تلفیق می شوند و رفتار، شخصیت و خلقیات ما را شکل می دهند. اکنون این پرسش مطرح می شود که موجودیت مم چیست و به اصطلاح از چه جنسی است؟ از مجموع مطاوی قائلان این نظریه بدون اینکه قصد مداقه نظری داشته باشیم چنین برمیآید که آنها اول موجودیت زیستی و بیولوژیک دارند دوم موجودیت ذهن بدنی دارند و به عبارت دیگر جای آنها در نظام ذهن بدن ماست سوم موجودیت روانتنی دارند و چهارم موجودیت اجتماعی و فرهنگی دارند بنابراین ترکیبی از فاکتورهای روانتنی، بیولوژیکی و ذهن بدنی درامیخته با عوامل اجتماعی و فرهنگی موجودیت ممهارا شکل می دهد البته این ادعای نظری مثل سایر ادعاها قابل نقد و بررسی است. در اینجا با تسامح از آن برای توضیح مفهومی مباحث کتاب و تنها در کنار سایر پایه های نظری که در بخش های پیشین ارائه شد استفاده می کنیم. طبق این آرا ممها در مغز جریان پیدا می کنند. کسی که خشونت میورزد در واقع مم خشونت در مغزش وجود دارد مثل کسی که فرزندش را با سیدی تربیت می کند. الگوها، مفهومها و ایدهها از طریق ممها ذخیره می شوند. ممها زخایر الگویی ما هستند که کپی می شوند، ترجمه می شوند، به هنجار تبدیل می شوند و خود را تکرار می کنند. ماهیت مم مانند جن اطلاعاتیست. ممها هستی هایی هستند که موجودیتشان اطلاعاتی است و حاوی اطلاعات هستند. هنجارها و رفتارهای معمول در یک فرهنگ بر اساس این اطلاعات شکل می گیرد. ارگانیسم بدن در نسبت با محیط نوعی سازگاری پیدا می کند. موضوعی که نخستین بار در تئوریهای های داروین مطرح شد و بعد توسعه پیدا کرد. این عمل سازگاری به صورت اطلاعات در جنها و ها ضبط می شود. وقتی سعی می کنیم با محیط سازگار شویم، چه سازگاری های انفعالی و چه سازگاری های فعال در جنها و کروموزوم های ما با موجودیت اطلاعاتی زبط می شوند، انتقال می و تکثیر می شوند. اکنون می توان فهمید که نظریه پردازان مم چه می گویند؟ آنها به این ام قائل هستند که موقعیت مم مثل ماهیت ژن اطلاعاتی است. فرهنگ محیطها و مناسبات با هم تفاوت دارد. هر یک از محیطها و مناسبات مختلف مثلا مناسبات شکار، مناسبات قبیلعی، مناسبات اقتصاد دانش، مناسبات جهان چند رسانعی، محیط سرزمین پر ناامن و بی صبات، و محیط سرزمین کم حادثه و نسبتاً با صبات و غیره فرهنگ خاصی را اقتضا می کند. به زعم قائلان نظریه مم در واقع از طریق سازگاری فرهنگ با محیط اطلاعاتی در ممها ها زبط می شود، انتقال می و کپی و تکثیر می شود. هر فرهنگ هاوی کتهای اطلاعاتی است که بنابر نظریه مم در ممها ها و ذخیره می شود. نظریه مم می توضیح دهد چگونه کتهای اطلاعاتی در یک فرهنگ ایجاد و فعال می شود. اگر در فرهنگی خشونت وجود دارد، حاویه کتها و اطلاعات خشونت است، نگرشها، ها، الگوها، طرز فکرها و نگاه ها کتهای اطلاعاتی هستند که در نظریه مم بیان می شوند. متاسفانه در مورد این نظریه به خوبی مداقع نشده است و منابع بسیار محدودی در مورد آن وجود دارد. در صورت تنقیه بیشتر می تواند صورت مفهومی و بیانی خوبی برای توضیح رفتارها، آدتواره و خلقیات مردم باشد از طریق ممها فرایند تکمین فرهنگ و تطور و انتقال آن بیان می شود ممها واحدهای های اطلاعاتی هستند که از طریق تعامل اجتماعی و همکنشی در ذهنیت جمعی جریان می آبند. این ذهنیت جمعی کپی می شود و شیوه های درونی شده ای از اندیشیدن را شکل می دهد. حال این سوال مطرح است که شیوه های درونی شده اندیشیدن ما چیست؟ چگونه میاندیشیم و چه شیوه ای از اندیشیدن را درونی کرده ایم؟ باور، ادراک و تصور درونی ما درباره اینکه مسائل زندگی را چگونه می شود حل کرد چیست؟ نگرش ما درباره اینکه فرزند را چگونه می شود تربیت کرد چیست؟ نگرش ما درباره اینکه مشکلات اجتماعی را چگونه می شود حل کرد و اختلافات را چطور باید فیصله داد چیست هر فرهنگی شیوه درونی شده ای از اندیشه در این گونه موارد دارد به طور مثال نحوه حل کردن اختلافات چگونه است با مشاجرات تند و برچسب زنی و کدگذاری های منفی یا حس و قارت و یا گفتگو و اقنا و مجاب شدن و صبوری این را کدهای اطلاعاتی تعین می کند ممها حاوی اطلاعات و رمزها هستند که به هنجارها و رفتارها ترجمه می شوند بنابراین ممها در واقع کدهای ادراکی و هنجاری و رفتاری معمول در یک جامعه هستند در هر فرهنگ کدهای ادراکی و هنجاری یا نرماتیف شکل می‌گیرد. اینها از جنس اطلاعاتند و ممها حاوی آنها هستند فرهنگی که مم خشونت را در خود دارد و مبتنی بر یک نوع اطلاعات و مفروضات و مفهوم هاست و خودش را به شکل هنجارها و رفتارها ترجمه و تکرار می کند. اطلاعات از طریق مم ها ذخیره می شوند سپس ترجمه و تبدیل به هنجار می شوند. در واقع مم ها حاوی رمز و اطلاعاتی هستند که آن اطلاعات شیوه های درونی شده ی اندیشه و عمل را در یک فرهنگ منتقل و تکرار و نسخه برداری می کنند ممها چگونه کپی و تکثیر می شوند؟ ممها یا همان کتای اطلاعاتی در واقع الگوهای نگرشی و رفتاری ما را نشان می دهند و حاوی هنجارها و قواعد هستند اگر این قاعده رواج یافته است که برای حل معیشت زندگی باید دروغ گفت، این هنجار درونی شده از طریق نوعی مم تکفین و یا تغییر پیدا می کند. کپی اطلاعات به صورتهای مختلف انجام می شود. مانند تجربه، فرض پایه، ادبیات دانش زمینی، یادگیری جدید و غیره. تجربه یکی از صورتهای کپی کردن اطلاعات است. فرض کنید، تجربه زیستن در یک سرزمین به این نتیجه برسد که شرایط ناپایدار است. تجربه ناپایداری خود در واقع نوعی اطلاعات است و کد اطلاعاتی خاصی از آن ناشی می شود. وقتی فرهنگی حاوی کد اطلاعاتی ناپایداری است، در واقع حاوی یک نم است که می گوید شرایط زندگی ناپایدار است، پس باید طوری از فرصت استفاده کرد. در این حال نوی فرصت طلبی منفی و خودمداری تلقین می شود. میگوید جلی خود را از آب بیرون بکش چون شرایط ناپایدار است جهان بر آب نهاده است و زندگی بر باد. اینکه شرایط اجتماعی و سیاسی ناپایدار است و به فردا اطمینانی وجود ندارد در واقع یک کد اطلاعاتی است که کپی آن از طریق تجربه صورت میگیرد. مردم این کد اطلاعاتی را از طریق تجربه کپی و تکرار می کنند و انتقال می دهند. مادرها و پدرها به فرزندان خود، معلمها به دانش آموزان، نخبه ها به مردم و مردم به یکدیگر. گزاره ها و فرض های که در ما شکل می گیرد، دومی نوع کپی شدن ممهاست. مثلا تکثیر گزاره دیگری غیر قابل اعتماده است، نوعی کپی شدن است که به صورت یک فرض پایه شکل می گیرد و در ما رسوخ می کند. این فرض از سازگاری فرهنگ با محیط، حوادث و شرایط برمیخیزد و به یک کد اطلاعاتی تبدیل می شود. سپس ضبط، ذخیره، کپی و تکرار می شود. انتقال میابد و تکثیر می شود. بر این اساس که دیگری غیرقابل قابل اعتماده است، پس باید فردی کار کرد و نه جمعی، باید پنهانکاری در پیش گرفت و چنین و چنان کرد و به این ترتیب اخلاق اجتماعی خاصی شکل می ادبیات نوع سوم از صور تکثیر ممها و زرب المثلها نمونه از آن است. این مثل که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، یک رمز و نوعی اطلاعات است که در ریزواهدهای های فرهنگ ما که در این نظریه با عنوان مم مفهوم شده، وجود دارد. از طریق ادبیات نوعی رمزگردانی صورت میپذیرد. رمزها به صورت کتای اطلاعاتی برای ما فضای هنجاری به وجود می آورند و حسب اقتضا به پشتگرمی آنها و یا حتی تحت فشار هنجاری آنها رفتار می کنیم. همین رمز خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو به نوعی ضعف هویت فردی و استحاله آن در یک هویت یکسانساز جمعی و یک توده را در جامعه بازنمایی و توجیه کند و مانع آزادی خلاقیت نقد تنوع تحول و نوآوری میشود انباشت دانش زمینی نوع چهاررم کپی شدن است برای مثال نوعی دانش پنهان در یک فرهنگ به وجود می آید که دیگران تملق را دوست دارند این دانش تکسیر و انباشت می شود در این صورت ما حامل نوعی دانش زمینی می شویم که دیگران از تملق خوششان می آید اگر دانش زمینی داشتیم که دیگران از تملق بدشان می آید تملق نمی کردیم ولی یک دانش زمینی پنهانی داریم که وقتی تملق می کنیم بسیاری خوششان میآید و فقط بعضی ها بعدشان میآید. در نتیجه تملق می کنیم امروز دانش زمینی بسیار مهم تلقی می شود. دانش زمینی در رفتار ما نفوذ دارد کشاورزی که بیل می زند یک دانش زمینی دارد رشته کشاورزی نخوانده ولی واجد یک دانش زمنی است یک دانش پنهان دارد که میداند چگونه آبیاری کند، چگونه بیل بزند و چگونه از کارش نتیجه بگیرد. همینطور اگر دانش زمنی داشته باشیم که دیگران از تملق خوششان میآید تملق به منزله یک قالب رفداری، کپی، تکرار و تکثیر می شود و به هنجار و قاعده تبدیل می شود. قسمم ها، حاوی فرس های پایه و دانش زمنی موجود در هر فرهنگ هستند. در هر فرهنگ، نوعی دانش زمنی و پنهان در ریز های فرهنگ، ذهن و نگاه مردم انباشته می شود. برای نمونه در فرهنگ عامه ما، این مسره خیلی به کار می رود که دوستی با هر که کردم، خسم مادرزاد شد. این سخن کوتاه نوعی ادراک را متولبر می کند. این ادراک رسوبی از آن دانش زمنی و شیوه های درونی شده اندیشه و فرس های پایه و منعکس کننده اطلاعات و رمز های ممتیک در فرهنگ است که کپی می شود و خود را تکرار می کند. سرانجام یادگیری های جدید از مهمترین صور کپی کردن مم یادگیری نوعی ماهیت ممتیک دارد. یادگیری تنها به صورت فردی نیست. بلکه می گروهی و اجتماعی هم باشد. تفاوت یادگیری اجتماعی با فردی این است که در یادگیری اجتماعی انصر شراکت وجود دارد. در واقع از طریق تعاملات، مبادلات، همانندسازی، کنش ارتباطی، ادقام افقها و مانند آن به تدریج، دانش و آگاهی شراکتی و تسهیم شده ی تازهی در جامعه انباشت می شود و به شعور جمعی و خداگاهی اجتماعی تبدیل می شود نمونه از یادگیری جمعی جدید این است که زنها یاد گرفتند در جامعه مشارکت کنند دیگر لازم نیست سنگ در دهان خود بگذارند و بپرسند چه کسی پشت است؟ این یادگیری هم ماهیت ممتیک دارد زن یاد می گیرد جنس معنس هم موجودی مستقل مانند جنس مزکر است و تمام حقوق بشریت را داراست توجه به حقوق زنان و رفتارهای ناشی از آن که ارزشها و هنجارهای متفاوتی با فرهنگ مذکر دارد، نوعی یادگیری جدید است و ماهیت ممتیک دارد. همچنین این یادگیری که مردم خود را رعیت ندانند و شهروند بدانند، ماهیت ممتیک دارد. به عبارت دیگر، از طریق یادگیری های اجتماعی، نگرشها، ارزشها و هنجارهای رفتار شهروندی درونی می شود. این نشان می‌دهد که نظریه مم به رغم هر انتقاد نظری که از آن می‌توان کرد، حداقل نظریه‌ای ساختگرا نیست، بلکه می‌توان از طریق آن تغییر و پویش در فرهنگ را توضیح داد، زیرا یادگیری‌های جدید را از جمله‌ی صورت‌های تکثیر ممها تلقی می‌کند و این می‌تواند منشأ تحول، دگرگونی و پویایی شود. نکته مهم این است که در هر کپی ترکیب متفاوت و متمایزی از اطلاعات تولید می شود. یعنی حتی وقتی اطلاعات را بر اثر تعاملات محیطی از دیگران می گیریم، آن را طور دیگری کپی می کنیم. در نتیجه، آن داده ها با وجود شواهت های خانوادگی در میان اطلاعات به صورت متفاوتی نسخه برداری و کپی می شود و این به تنوع و تحول می انجامد. حاملان، و ناقلان مم در اینجا این پرسش به میان می آید که حاملان کتای اطلاعاتی چه کسانی هستند نمونه ای از حاملان مم ها از این قرار است مردم، کنشگران، پدر و مادر، همالان، معلمان، نخبگان، رسانه ها و غیره وقتی مولوی می گوید می رود از سینه ها تا سینه ها از ره پنهان صلاح و کینه ها به فرایندی اشاره میکند که در نظریه ممها از آن بحث شده است وقتی مولانا را با چشمنداز تازه و در سپهر مفهومی امروزی میخوانیم چیزهایی میبینیم که با تسامح میتوان گفت با مفهوم پردازی های جدید قابل مقایسه یا متناظر است و این از نبوغ شمس محمد است که شاعری بلخی، رومی و جهانی است ممها سینه به سینه منتقل میشود حاملان مم ها واسطه های انسانی هستند، مردم و کنشگران حاملان مم هستند، کنشگری که برای تغییر فرهنگ رنج معنادار میکشد حامل مم و نیز مروج مم های جدید است. پدرها و مادرها از نخستین انتقال دهندگان اطلاعات و ممها به فرزندان هستند و موجبات اجتماعی شدن و درونی شدن ارزش رفتاری و نگرش ها را در آنها به وجود می آورند. افزون بر پدر و مادر، معلمان، همالان، هم شاگردی ها، هم ها، بچه های محله، هم ها، قوم و خیش، هم و همکاران نقش مهمی در انتقال ممها دارند. نخبگان و به ویژه نخبگان سیاسی حاملان کدهای اطلاعاتی هستند مردم اغلب بر دین حکمرانان خیشند و به پادشاهان خود خیلی شبیه تر از پدرانشان هستند نخبه ها تأثیر فراوانی بر جامعه دارند وقتی به کسی که از نمای دور و از طریق آثار و گفتارش با او آشنا بودید نزدیک می‌شوید و برخی رفتارها و مناسبات واقعی او را با ادعاها و گفتارش مغایر می‌بینید تمام ارزش‌هایتان ذوب می‌شود میگویید اگر میشد این ها را به های وجودی مبدل کرد، ایشان چنین میکردند. اگر ایشان با وجود این همه مدعیات نتوانسته چنین کاری را عملی کند، پس این ها عملی نیستند. اینجاست که مم خاصی شکل میگیرد مبنی بر اینکه جای ارزشها در گفتارها و نوشته هاست، نه در کوچه و بازار و معاملات و مناسبات واقعی. رفتار یک نخبه روی فرزندان ما بسیار تأثیر دارد. سرانجام رسانه ها نیز نقش غیر قابل انکاری در فرآیند ممتیک جامعه دارند. راه‌های انتقال و شیوع مم ها. جابجایی مم نیز متنوع است. تأثیر و تأثیر و ارتباطات، تقلید، تجربه، خاطره، پراکسیس، یادگیری و غیره. یکی از صور جابجایی ممها، ارتباطات است سوار تاکسی می شویم معامله می کنیم بانک می رویم این ارتباطات و تأثیر و تأثیرها همه ماهیت ممتیک دارند تقلید دومین صورت جابجایی است البته در اینجا منظور شکل منفی تقلید کورکورانه و سرسپردگی نیست که در جامعه ما رواج زیادی یافته است منظور تقلید به معنای عام روانشناختی یا همان همانندسازی است به هر حال انسانها از رفتارهایی که می بینند، نوعی همانند سازی می کنند. تقلید و اقتباس ممکن است شکل سازنده و مثبتی داشته باشد و با انصری از نقد، خلاقیت و ایجاد ارزش افسوده توان باشد و منشع تنوع و توسعه فرهنگ شود. ولی اگر تقلید به صورت منفی باشد باید گفت ای دوست لعنت بر این تقلید باد. تجربه صورت دیگری از جابجایی است همانطور که پیشتر نیز اشاره شد تجربه زیستن در این سرزمین به ما میگوید چنین کن و چنان نکن این خوب است و آن بد این کارآمد است و آن نتیجه نمیدهد اگر این کار را بکنی مثلا حقوق عمومی را رعایت کنی حماقت است و اگر آن کار را بکنی مثلا از چراغ قرمز عبور کنی و سر مردم کلاه بگذاری زرنگی است در بخش‌های قبلی درباره این مباحث از منظر نظریه‌های دیگر بحث کردیم در اینجا از منظر نظریه مم بحث می‌کنیم تجربه‌های زیستن در این سرزمین پایه‌های ممتیک رانندگی و ترافیک ما را شکل می‌دهد شما اجازه می‌دهید دیگران راحت‌تر بروند رعایت می‌کنید و خدکشی، چراغ قرمز و مسیر را در نظر می‌گیرید بعد میبینید خیلی طول کشیده ولی هنوز نتوانسته به مقصد برسید. چند نفر هم نگاه در صفیح به شما کردند. پس شکست میخورید. به تدریج تجربه زیستن در این سرزمین و رفت و آمد در این خیابانها به شما القا می کند که زرنگی بکن و برو. این شکلی از جابجایی ممهاست. صورت دیگر جابجایی ممها خاطره هاست. میگویند به من بگو خاطراتت چیست تا بگویم کیستی عارف شیدایی دست به دعا شد که خدایا همه از آخر میترسند عبدالله از اول میترسد خاطرات زیستن در این سرزمین به ما میگوید با دیگران چنین رفتار کن و با خود چنان مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی چنان که پرورشم میدهند میرویم خاطرات این کشور به ما القا میکند دسیسه در کار است در نتیجه معمولاً علل شکست خیش را به بیرون فرافکنی می کنیم و کمتر در صدد رفع عوامل درونی شکست برمی آییم. صورت دیگر پراکسیس است. عمل رهایی بخش و کنش انسان ها می وز را تغییر دهد. الگوها و شیوه های اندیشیدن با پراکسیس تغییر می کند. کنشگران با الگوهای رفداری تازه و خورد فرهنگهای جدید ممهای تازهی ترویج می دهند و در نتیجه کپیهای جدیدی صورت می پذیرند. نسخه های تازه ای به وجود می آید و تجربه های نوینی شکل میگیرد. صورت دیگر انتقال ممها یادگیری است. یادگیری برای زیستن متفاوت و با ارزشها و خلقیات دیگر. مردم می توانند، یاد بگیرند، طور دیگری ببینند و طور دیگری زندگی کنند. همه جای دنیا با تغییر پیش رفته است. هیچ وقت مردم کشورهای اسکاندیناوی از اول اینطور نبودند. ژن غربی و ژن اروپایی موضوعیت علمی ندارد. به این ترتیب، چنانکه پیشتر نیز گفته شد، نظریه ممها تواند تا حدی از عهده توضیح پویشها و کنش های فرهنگی و تحول در خلقیات اجتماعی فرایند های تدریجی و جهشی ممها فرایند های ممتیک در فرهنگ به دو صورت می تواند روی دهد به صورت انتخاب طبیعی و سازگاری تدریجی و یا به صورت ویروسی و جهشی در شکل تدریجی فرهنگ به تدریج حاوی اطلاعات خاصی می شود برای مثال می توان به پنهانکاری اشاره کرد مردم در این سرزمین به تدریج در سازگاری با محیط یاد می‌گیرند، پنهانکاری کنند به حدی که حتی در امثال و حکم آنها نیز نفوذ می‌کند. مثلاً می‌گویند طلا جایی که می‌روی و آیین خود را پنهان بدار. به این ترتیب مم پنهانکاری به صورت انتخاب طبیعی و تدریجی تکوین می‌یابد. اما حالت دیگری از فرایندهای ممتیک فرهنگ، حالت ویروسی و جهشی است. برای مثال میتوان از گسترش ریا و مقدسنمایی در دوره اخیر یاد کرد تمسک به رفتارهای مذهبی ریا و مقدسنمایی بیشتر شده است این نوعی تکسیر جهشی بوده است البته منظور گروههایی در خور ملاحظه از مردم است نه همه مردم اصلا وقتی از مردم صحبت میکنیم در معرض نوعی مصامحه در گفتار هستیم چون مردم وجود ندارد این افراد گروه ها و اجتماعات هستند که وجود دارند مردم یک چیز اعتباری است مردم نه سست و ضعیفند و نه قهرمان مردم انواع و اقسام آدم ها با رفتارهای مختلف هستند ولی گاه شواهدی از رفتارهای مشابه در میان آهاد و های مختلف میبینیم و با قدری تسامح میگوییم مردم چنینند و چنانند برای مثال، بخش درخور توجهی از مردم ایران تلاش کردند، خود را با شرایط و ساختارهایی که به تازگی شکل گرفته تطبیق دهند. در نتیجه، ویروسهای تظاهر پراکنده شده به حدی که از انواع مدل جای سجده بر پیشانی سخن میرود. ولی آیا به واقع مردم ایران آدمهای ریاکاری هستند؟ به نظر می آید چنین گزاره هایی به معنای ذات باورانه فاقد مبنای منطقی باشد در عین حال در یک دوره ای رفتاری به شکل ویروسی و جهشی تکثیر می یابد این وضع علت دارد برای مثال دولتی شدن دین و انواع و اقسام شرایط دست به دست هم داده و در نتیجه بخشی از گروههای اجتماعی در این سرزمین و تحت فشار این شرایط مبتلا به ویروس نمایی، ریاکاری و رفتارهای چندگانه شدهاند و به نحوی قربانی شرایط شدند بدون اینکه خودشان ذاتاً چنین باشند